اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بنام خدا بند بی انداز محبان نهاویت باره تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تاسین این آویات قرآن و کتاب مبین است و, و بشارت برای مؤمنان است همان کسانی که نماز را برپا می و زکات را ادا می کنند و به آخرت یقین دارند کسانی که ایمان به آخرت ندارند اعمال آنها را برای آنان زینت می دهیم بطاقی که آنها سرگردان می شوند لهم سوء العذاب آنها کسانی هستند که عذاب بد برای آنهاست و و آنها در آخرت زیان کافترین مردم من و به طور مسلم این قرآن از سوی خدای حکیم و دانای بر تو القام می شود اینی آنست نارا سآتیکم منها به قبر او آتیکم شی هذا قبت بخاطر بیا هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت من آتشی از دور دیدم من به زودی خبری برای شما میآورم یا شعله آتشی تا گرم شوید فلم جاء آبود یا انبود من من حولها و سبحان الله رب العالمين. هنگار میکن آتش آمد نداوی برخواست که مبارک باد آن کس که در آتش است و کسی که در ادزاق <تصفيق> آن است و منسس خدا بندی که فربارکار جهانیان است یا موسی الله العزيز الحكيم أي موسى من خدوان العزيز وحكيم وألقى عصاق فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مجبرا ولا معقل یا موسی لا تخف انی لا اخاف لدَی المرسلون را بیافتند هنگامی که آن را مشاهده کرد دید همچون مارهای کوچک به هر سو می‌دوند و عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد ای موسی ندان که رسولان در دست من نمیترسند إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن فإني غفور رحيم مگر کسی کس تام کند سفرس بذیر و بنيكی تبدیل نمو جاد كمان غفور و رحیما وعدخل يدك في جيبك تخرج بيضان نرسوو دستت را در گریبانت داخل کن هنگامی که خارج می شود نورانی و درخشنده است بی آنکه عیبی در آن وجود داشته باشد این در سمره معجزات نوگانهی ست که تو به آنها ها بسوی فرعون و فرستاده می شوید که آنها قوم فاسق و توقیانگرند فلم ما هذا و که اوجاو روشنی بخش ما به سراغ آنها آمد گفتند این صحرای آشکار و جهدو بها و استیکنتها انفسهم ظلم و غلوه فانبو کیف کان عاقبت المفسدین با آن را از روی زول و سرکشی انکال کردند در قول که در دل با آن یقین داشتند پس ببین که سرانجام مفسدان چه شد والا خت این دود واصول منما وقال الحمبولله ای بابال نه عل که کرد من بدن المؤمنین ما بدا بود و سلامان علمیر قابلمراحظ ای بخشید و آنها گفتند هم دست آن خداوندی که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش بترری بخشید ورد سلیمان داود وقال یا ایوها من ناس علیمنا منطق الغیر و اوتینا من کل شیئی این آذار هو الفضل المبین با سلیمان بارس داود شد و کفت ای مردم بما سخن کفتن پرندگان تعلیم داده شده است با بما آتاك قدته في فصيلته واشكاليه وحوشى لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد لما قالت نملة يا أيها النمو دخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمو دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وبرو جسوليمان نشكرية أو أرجل أو دمي ومور جمع ميشوراني و ایشان همه با نظم خاصی قرار داده شده بودند تا چون به سرزمین مرچگان رسیدند مرچه کاف ای مرچگان بلانه های خود در مبادا سلیمان و لشکریانش شما را نافهمیده پایمال کنند فتبست مضاحکم من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا ترده وابخلني برحمتك في عبادك الصالح سلیمان از سخن مرشد تبسون کرده گفت پربار کرد مرا بر دار تا شکر نعمتی را بستانم که به من و به پدر و مادر من انایت کردی و عمل صالحی انجام دهم ده که مورد رسای تو گردد و به مرحمت خود مرا در سف بندگان سالح خود درار و بودود كان من الغائی و او از پرندگان باجویی کرد و گفت مرا چه شده که هدهد را بینم یا او از چ بهی خاکف استلوریبا عذابا شگرد او لاح نه او لانی بزولوان؟ من او را قطعا کیفر شدید خواهم داد بیا او را سبح می کنم یا دلیل روشنی برای غیبتش برای من بیا برم فمکت غیر بعید فقال احفت بما لم تحق بهی وجدت من سبعین بینبعین یقین چندان طول نکشید که هدهد آمد و گفت من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی من از سرزمین سبا یک خبر قطعی برای تو آوردهام انی تملکهم من كل زنی را دیدم که بر آنها حکومت حكومت میکند با همه چیز در اختیار داشت و تخت عظیمی طلنت. وجدتها جنتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و لهم الشيطان اعمالهم لهم لهم الشيطان اعمالهم لهم عن السبيل فهم لا يهتدون اما من او و قومش را دیدم که برای غیر خدا به خورشید سجده می کنند و شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت داده آنها را از راه باز داشته و آنها هدایت نخواهند شد الا يسجدوا لله الذي برای خداوند سجده نمیکنند که آنچه در آسمان ها و زمین پنهان است خارج میکند و آنچه را مخفی کنید و آشکار نمیسازید ميتواند الله که معبود جز او نیست و پرفرکار و صاحب عرش عظیم است قال من, من سلیمان گفت ما تحقیق میکنیم ببینیم راست گفتی يا از سرکویان هستی از هب بی کتابی هادا فألقه الی انتم متول عنهم فانظر ماذا يرجعون؟ این نامه مرا ببر ببر آنها بیاف کرد سپس برگرد ببین آنها چه اصل عملی نشان میدهند قالت یا ایوها الملع ام يا سبا گفت ای اشرم نامه پرارزش به سوی من افتاد شد این من سلیمان و انه بسم الله الرحمن به نام خداوند بخشنده ألا تعظوا علي وأسوني مسلمي توشيما من إينا بلتريجوي نسبة ببسوي من نكني وبسوي منعجي لخولك تسليل حقا قالت يا أيها الملأ أسوني في ما امرا سپس گفت ای اشراف و ای نظر خود را در این امر مهم بازگوه کنید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور شما انجام ندادم قالوا نحن نحمن و اوو قو وو ب این شدری گفتند ما درای نیروی کاکی و قدرت جنگی فراوان است ولی تصمیم نه خاگی ببین چراست تور قالت ان الملوك اذا دخلو قرية افتدوها و جعلو اعزت اهلها ادله و کذلک افعلون شاهن <تصفيق> هنگامی منطقه آبادی شبند آمزا با فساد و تباکی می کشند و عتیزار انجارا ظلیل می کند آوری کار آنها همین کنند. و این هدیه فناوضی است گرانبهای برای آنها تا ببینم درست من چه خبر می‌فرستم. بلند میده. هنگامی که فرستادگان ملکهی سبا نسل سلیمان آمدن گو میخواهید مرا با مال کمک کنید و فرید دهید آنچه به من داده از آنچه به شما داده بهتر است بلکه شما هستید که به هدایایتان خوشحال می‌شوید ای روزی اجللت و سوی آنها باز کرد و اعلام کن بادشکر حا به فراو آنها می آیم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و با آنها را از آن تر زمینین به صورت و در عین حقات بیرون میرمید! <تصفيق> ایوها الملع ایوکم ای بذرگان کدام یک از شما تبا نوزی دارید تخت او را پیش از آنکه خودشان نفت من آگهند برای که من بیارید قال من ال اائات كذنی ق سووقم مقام وایعل با ا افریتی ازجن گفت: من آن را نسدتون میآورم پیش از می آن که از مجلد برخیزی و من نسبت به آن تبانا و اممی قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرق فلما رآه مستفرا عنده قال آبا من فضل ربي ليجلوني أأتر أم أتر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ اماو شخص کئنه اسکساب داشت گفت من آن را به تو پیش اردم که چشم بر هم زدنی میآورم چون سلیمان آن تخت را دید که در نزد او استقرا یافت گفت این است فصل پروردگار من است تا مرا آتمادش کند که آیا شکر میکنم یا ناسپاسی فلسی می نماخیم که شکر کند پس حقا که برای خود شکر میکند و کسی که ناسپاسی کند یقینا پر من بینیا و که به است تستدي ام تسنون من الذين لا يستدون سليمان تخت اورا براو يشناشنال ببینم آجام متفجی می شود یا از کسانی که هدایت نخواهند شود فلم ماذا قيل اكذب حال بود با او دیینمهقا و نیم هنگامی که او آمد گفته شد آیا تخت تو ایدون است در پاسخگاه گویا خود آن است و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آده بودیم و قد دام ما كانت تعبدهم دون الله انها كانت من قوم كافر باورا از آنچه چی از خدا میفرستید باز داشت که او از قوم کافران بود قیل لا تقول الصدق فَلَمَّا رَأَهُ حَسِبَتْهُ رُجْدَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَفْيَهَا قَالَ أَنَّهُ صَحُمُ مَرْضٌ مِنْ قَوَالِدٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَلَمْتُ مَعَكَ لِيَمَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ و او گفته شد داخل حیات قصر شد اما هنگامی که نظر به آن افکند پنداشت نهر آبی و ساق پاهای خود را بر نکرد گفت این آب نیست بلکه قصری است از بلور ساد ملکۀ سبا گفت پروردگار من به خود ستم کردم و با سلیمان برای خداوندی که پروردگار یا است اسلام آوردمد وَلَقَدْ إِلَى ثَمُودَ اللَّهَ ما به سوی برادرشان صالح را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستید اما اوارخا به دو گروه تقسیم شدند و به مخاف کممه پرداند قال عقاموممت درجلون دایی اعتقادل قبل الحسنه لولا تستا الله لعلكم ماحل ملبگو موب گفت من چرا دراز بدی قبل از نیکی عجله میکنید چرا از خداوند تقاضای آمرزش نمیکنید شاگرد مشمول رحمت شوید قالوا القیومابک وابنا معت قال طارم الله بل انتم قوهم تفتنون آن گفتند ما تو و کسانی را که با تو هستند به فال بد گرفتیم سالح گفت فال بد بنی نیز خدا شما گروهی هستید که مورد آک ماگش؟ قرار گرفتند و كان في المدينه سته رهص يفسدون في الارض ولا يصلحون بدرانچ نه گروه بودند که فساد در زمین میکردند و و تقاسموا باللَّن لبيتنا له وأهله ثم لنقولا للولي ثم لنقولا للولي ما شهدنا مهلك أهله وإنَّ لا فادكون أنه قتند بيقي قسم ياذ كنيد بخداك بر ساودي به خانواده از عشبخون میسن و آن ها را به قصر می رساندند ولی دم او میگوییم ما هرگز از حراکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم ایشان چاره سنجیدند و مانیز چاگه سنجیری در حالی که ایشان احساس نداشته همده بنگر آقابت توفعی آنها چه شد که ما آنها و قومشان را همگی نابون کردیم خاوية بما ان ذلك لآية لقوم این بروطهم خاویة این خانهای آنهاست که بهخاطر اسون و ستمشان خالی ماندند و در این نشانه روشنیس برای کسانی که آگاهاند وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ را, ایمان ای را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند نجات یافتند بلغن إذ قال را آورد هنگامی که به قومش گفت آیا شما به سراغ کار بسیار کبیث می روید در حال که زشتی و نتای جشون انزام می بینید؟ اینکم لتأسون رجال شهوتا من دون نساء بل انتم قوم تجهلون آیا شما به جای زنان به سراغ مردان از روی شهوت می روید؟ آوه شما قوم جاهل استید فما کان قومه ایلا أن من قريةكم. انهم آنها پاسخی جز این نداشتند که به افتیگر گفتند خانتان لوت را از شهر و تیار خود بیرون کنید که اینها افراد پاک دامن استند و اهله خانواده اش را نجاز دادیم بجز همسرش که مقدر کردیم جزء باقی ماندگان باشد وَأَمْظَرْنَا عَلَيْهِمْ مَضَرًا فَسَاءَ مَضَرٌ ذَلِيلٌ ستف باراوني أساند بران خوف كي هم مجي زير ان مدكون شداند بحجة بدافت باراوني انساو شدكون قل الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفاء اعوام قیرون ام ما نشرفون بگو همد مخصوص و سلام و درود بر بندگان برکسیده اش او یا خداوند بهتر است یا بطهای را که شریک او قراب میدهند ام من خلق السماوات والارض و انزل لکم السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجراء أإله بلون آیا بطه هایی که معبود شما هستند بهترند یا ذاتی که آسمان و زمین را آخری و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغ های زیبا و سروع انگیز رویان و شما قدرت نداشتید درختان آن را برویانید آیا معبود دیگری با خداست نا، no, no, no, no. آن خاوکرکی هستند که از روحی نازلی مخلوقات خدا را در زادیش او قرار می دهند. جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خَلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاتِيَ وَجَعَلَ البحرين مع اللَّهُ لا یا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد در میان آن نهرهای روانتا با برای زمین کوهای ثابت و پا بر جا ایجاب کرد و میان دو دریا مانع قرار داد آیا معبود با خدا است نه بلکه اکثر آنها نمیدانند. امن یجیب المبضر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض مع الله قلیلا ما تذکرون یا <تصفيق> صحبی که دعای مستر را اجابت می کند برطرف می با شما را قرب او قرار میدهد اگر معبود با خدا است کمتر متذکر میشوید ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الاه مع الله تعالی الله یا ذاتی که شما را در سارکی های صحرا و دریا هدایت می کند بس ذاتی که بادخارا بشارت دهندگان پیش از نزول رحمتش میفرستند آیا معبوده با خدا عفد؟ خدا بند است طرف از اینکه شریک برای او قرار دهند من يرب الخلق ما يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض مع الله الهاتوها نقم ان كنتم صادقين يا صوتك افرينش را اغاز بحث پس را تجدید میکند بحثات که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد آیا معبودی با خدا است بگو دلیلتان را بیاورید اگر راست نکشید بگو کسانی که در آسمان و زمین هستند از غیب آگاهی ندارند جز خدا و نمیدانند کی برانگیخته میشوند این مشرکان اطلاع صحیحی درباره آخرت ندارند بلکه در اصل آن شک دارند بلک نابینا هستند کافران گفتند آیا هنگامی که ما با پدرانمان خواب شدیم باز هم از دل خواب بیرون می لقد وعذنا هذا که وآبائنا من قبل إن هذا إلا اثار الطير الأولين به ما و پدرانمان از پیش تا شده اینها همان افسانه های خرافی است قل سيروا في در روی زمین سیر کنید ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید فلا تحزن عليهم ولا في ضيق مما يمكون ان و این همه قصه آنها را مخور و سینه‌ات از توت ای آنها تنگ نشود و متى ذا الوعد ان كنتم صادقين این بعد عذاب را که به ما اگر راست می‌گویی خواهد آمد قل عسى بگو شاید فاقیت آنچه را عجل می نزدیک و در کنار شما باشد و این ربک له فضل على الناس ولكن اثرهم لا یشکون پربرکار تو نسبت به مردم فصل و رحمت دارد برای اکثر آنها شاک گذار نیستند. و این ربت لایعلم ما تکن نصدور و ما یعنیدون. با با و اپر برگارت آنچه را در سینه پنهان تنهان و آنچه را آشکار می و خوبی می دانند. وما من غائلة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وهيش موجودة فين هم در آف من فاسمين نيس مجد إن كدر كتاب مبين تبتاست إن هذا القرآن يقص على بنيئس الى اثر الذي هم فيه يختلفون ان قران اكثر چیزهای را که بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند بروج آن ها بیان میکند و انه له در و رحمه للمؤمنين به معنی هدایت و رحمت بروج مؤمنان ها ان رَبَّتَ يَقْضِي بينهم بحكمه وهو العزيز پر برکار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری می و وحبوس، قاتل، و دابنها فَتَعَتْكَلْ عَلَى اللَّهِ پس بر خدا توکل کن که تو بر طریق حق آشکار هستی. انک لا تسمعن تسمع تو نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمیتوانی کران را هنگامی که روی بر و پشت می‌کنند نوما أنت بهذه العم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون و نیز نمیتواني كوران را از گمراك برهان فقط میتوان سخن خود را به گوش كسان برسانی او موضی فتیرش ایمان با او جاو فماظتان با تفرادر حق تسليما و اذا وقع القول علیم اخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن أن الناس كانوا بآياتنا لا و چون با عذابشان فرا رسد، از عذابشان فرارسد از زمین جانوری دابت الارد را برای ایشان بیرون آونید که با آنها سخن گوید به آن که مردم به آجاز ما یقین نداشتند و من کل امت فوجا من من يكذب بآياتنا فهم بخاطر بیا روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آجات ما را می کردند محشوب می کنیم و آن را نگه می داریم تا با یک دیکر حتی اذا جاؤو قال اتذبتم بی ولم تحیقو بها علما اما دا کنتم تعملون تا زمانی که به پای حساب میاجند با انها میگوید آیا آجا که مرا تکثیب کردید و در صدر تحقیق بر نیامدید شما چه اعمارید انجام می تازید و وطع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون در این حنکام فرمان عذاب برانها با باقی می شود با آنها سخنی ندارند که بگویان الم یروا انا جعلنا الليل لیسکنو فيه ونن النهار مبصرا این نفیدار که آیا آنها ندیدند ما شب را قرار دادیم که در آن آمند و روز را روشنی بخش در این امور نشان های روشنی برای کسانی که آماده ی پسیرش ایمانند وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَذْعَلُ النَّاسُ تَضْعِيلًا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنَ في الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ بخاطر بیاوری دروذیرا که دستور دمیده می شود با تمام کفارانی که در آسمان خواب و سنین در جز کسانی که خدا بخواهد و همگی با خضور در پیشگاه او حافر می شود و ترال جبال تحت رو آجامدتا و هیت مغم من رست حال سن الله الذی اینهو خبیرون کوه ها را میبینی و میپنباری ساکنند ولی در حقیقت همچون ابری در حرکتند تون خدا و آفرینش نشع که هر چیز را محکم و استوار سات است حقا که او به آنچه میکنید آگاه من جاء بل حسنة منها کسانی که کار نیکی دهند بهتر از آن خواهند داشت و آن ها از بخشت آن روز در و من جاء هم ف النار هل تجزون الا ها کنتم آنها که اعمال بده انجام دهند برو در آتش افکرده می شواند آجاو جساو جید جد آنش کردید خواهید داشت إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين بقو من مأمورم فربار قوي إن شاهد يعني مكة كي مقدس را اباودتكم ومن كسي كي إن شاهد را هرمت بخشير وهم شيء از آمه اوست و من معمورم که از مسلمین باشم و ام اتنو القرآن فمن اهتبا فإنما يهتدی لنفسه و من ضل فقل إنما أنا من المنذرين با این قرآن را تلابت کنم هر کس هدایت شود. برای خود هدایت شده، و هرکس گمراه کرده، گناهش به خود او. بگو من فقط از انسان کن کانه. بگو حمد. و سفاگش مخصوص ذات خداست به زودی آیاتش را به شما نشان میدهد تا آن را بشناسید و پر بعد تو از آنچه چه انجام میدهید غافل نیست